ایران بازنگری در تاریخ قلم رو بمیانی لودینگیرا یک شاعر سومری. بله شعر بلندی داره به زبان سومری هم و 6 هزار سال پیش. یک بخش کوتاهش اینه. میگه نیاکان من از سرزمینی به نام سرزمین مقدس به اینجا آمدن که آن سرزمین در شرق اینجا واقع است شما از یه خط چی میفهم؟ اونشخصاص ژرد سومر کجا میشه؟ دیگه آدم چی بگه دیگه؟ یک دفگی آمدن ما نه نمیدونیم اینا از کجا آمدن چی شد ایوهایی حالا چه جوری کشفش کنیم؟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 هدای ما اینه که زمان e دوره که همه آریایی‌هان که اروپایی‌ها بهش میان هند و اروپایی دارن با هم زندگی میکنن. هنوز از هم جلوه نشده و این سند موثق کامل ترینش دست ایرانیاست نه هتمه هندی ها به این قشنگی و این کاملی نیست دست اروپاییان به هیچ به این کاملی نیست کامل در سندی که از جمشید دستش دست ماست مصری‌ها هیچ گزارشی از سرما ندارد شما در اسطوره رودان و هند هیچ گزارش یه که سرما ما آمد ما مقابله کردیم نمیرم خدای فلان کمک کرد از اینا ابدا اما جالبه در همه اینا به علاوه اصلاب گزارش درون فلات گزارش سیم داریم همشون داریم همشون هم در یک تاریخ مشخص به نام ایزد یکتا باز سلام و ادب و احترام خدمت هممیهنان گرامی همراهان صدای امید از رادیو اینترنتی و سامانه اینترنتی www.صدای امید.com در خدمت شما هستیم صدای ما رو از صدای امید می‌شنوید در قسمت 24 برنامه ایران وج در خدمت شما هستیم در قسمت 23 مباحث و طرح بحثی توسط جناب آقای ایران مهری کی است کارشناسان برنامه مطرح شد که ما تا زمانی که در مورد برخی مسائل به یک توافق حالا توافق توافقی نمیشه گفت به یک اجماع نسبی نرسیم نمیتونیم در مورد دوری جمشید به یک برایند کلی و برآورد کلی و اساسی برسیم یکی از این مسئله مکان ایران به چهسیم ایران که ما در موردش داریم بحث میکنیم کجا بوده دو نفر از کارشناسان جناب آقای فیروزی و جناب آقای کریمی فرمودن که ایران وج و خودستان جناب آقای کریمی با سندی که از مهریشت آوردن فرمودن که به طور قط این در واقع مکان ایران وج که در متون کوهن ایرانی اومده به طور قطع در شمال شرق فلات ایران در شمال شرق ایران که ما الان ازش به نام آسیای میانه نام میبریم یا فرارود ماورا و نهر خراسان بزرگ که در واقع در متنی که از مهریشت جناب آقای می فرمودن اسم از بلخ و خارزم اومده خوب جناب آقای ایران می فرمودن که این مسئله در واقع به مسئله شک و شبه دارن یک مسئله رو مطرح کردن که اتوان از اول مدعی ما هستش ما هر سندی رو که می‌خوایم مطرح کنیم حتی اینم جناب آقای کردیم دو سه بار تو برنامه های مختلف تکرار فرمودن هر سندی که اینجا مطرح میشه باید از فیلتر تمامی علوم رد بشه است تمامی فیلترها باید رد بشه و ما هنوز این سند و اسناد دیگی که در واقع بر آن است که ایران وج در شمال شرق در خراسان و بزرگ، در شمال شرق فلات ایران هستش رو هنوز به طور کامل اینها رو از ها نگذروندیم، باید این رو از فیلتر بگذروندیم و به یک اجماع نسبی برسیم. خب یه مسئله رو من میخوایم اینجا مطرح بکنم. ما الان تو آسیای میانه یه جاهایی داریم به کشورهایی ساخته شده تحت عنوان بهشون میگیم ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان از بوجودتون ترکمنستان اینا ببینید اینها تا همین سال پیش تو این منطقه ما سه شهر بیشتر نداشتیم. می کش حال সমরقند بود بخارا بود و به اضافه یه تاشکند اون موقعی که این کشورها این کشورها که اچارز کنه این مناطق بعد از قراردادهای آخال و گلستان به کشور روسیه تزار منتقل شدند یعنی یه سری خانات بودن خانات مختلف بودن اصلا کشوریا، اون حالت تمدنی که مثلا بعد در این خود این فلات ایران هزاران سالی که به وجود اومده و ما شهرهای مختلف طب مثلا تپه های مختلف باستانی چند هزار ساله داریم اونجا وجود نداشته یه سری زندگی های اولیه حتی میدونین که به وجود اومدن اندیشه فقط توی شهر امکان داره. شهر که اندیشه تولید میکن خصوصا اندیشه سیاسی، اندیشه اجتماعی و تمدن سازی و از تولید فکر انجام میشه. شما با زندگی قبایلی، با زندگی خاناتی و حتی با زندگی روستایی هم تا نمیشه. حالا روستا واقعا جای تولید و کشاورزی این چیزا هست ولی جای تولید اندیشه نمیتونه باشه. تمدن نمیتونه تولید بکنه. این شهر هستش که تمدن میتونه تولید بکنه. و این خاناتی که توسط تزارهای روست به کشور روسیه، کشور بزرگ روسیه ملحق شده بودن اینها کشور به اون شکل نبودن و یک دونه رودخانی اترکی بوده که بین حکومت قاجاری و حکومت تزار روس بعد از قرارداد گلستان به عنوان مرز تعیین شد. و حتی تو تاریخ است همین 100 سال پیش جناب امیرمعید سباتکوهی که پدر بزرگ همین آقای دکتر با بابند خودمون ایشون یکی از کارهایی که انجام داد به سران کانات ترکمن از دست تزارها به این سمت پناه هاوردومه اونا پناه داد حتی مقابل مقابل تزارروس وایساد تزارروس خواست که اصلا اونا رو پناه, بده، اونا رو پناه نده و تحویل به تحویل نداد لذا یک سری خاناتی بودن نه کشور داشتن نه چیز داشتن فقط یک سری به نظرم یک خیانت بزرگی بود که توسط استالین و چپ های اون موقع پولیت شوروی بود که اینا گفتن که ما بیایم خلقه ها درست کنیم گفتن که خلق خب قبل از اصلا اتحاد، تشکیل اتحاد جماهیر شوروی و انقلاب 1917 که یه جمهوری در این وقت، این سمت قفقاز، جمهوری آذربایجان شکل گرفت کنم اینگلیزی ها به وجود بودن گفتم به عنوان اولین جمهوری مسلمان که حالا اسنادش در یک برنامه دیگه که ما صحبت کردیم و بحثش کردیم تو هودران نزدیک شش قسمت به همراه جناب آقای دکتر کیوان پهلوان اینو حتما شنوندگان از گوش بِنن که خیلی مسئله مهم مسئله مهمی توی اونجا ما مطرح کردیم ما رو بحثی کارین ولی میایم این سمت شب که دو از کاشناسان ما معتقدن که اینجا مکانی ایران ایرانوچ بوده پس خیلی باید جای از لحاظ باستانی و از لحاظ تاریخی و از لحاظ شاخصهای تمدنی صناعت و زراعت و فلاحت باید خیلی جای مهمی باشه اینجا اومدن همین زمان استالین 80 سال هم از نگذشته یعنی 820 سال پیش شدند. استالین ما خالقهای اینجا داریم و این خلقه ها میتونن بیان در واقع بهشون جمهوری بدیم. حتی گفته شد بهشون که هر کسی بتونی یک میلیون نفر بیاره ما بهش جمهوری میدیم. مثلا اون تاجیکستان اینجوری چه شکل است؟ حتی برای از به حضورتون که ترکمنستان مثلا یک میلیون جور نشود. نه 200-800000 شد اومدن مثلا ازبکه. از گرفت نا تاجیکستان اینجوری شد و دقیقا مثل سیاست انگلستان عمل کرد جناب استالین این یوسف جوگاشویلی که اومد دقیقا خب بالاخره تو مذاکرات مختلف خصوصاً در مذاکرات یالتا با جناب چرچیل بالاخره یه هشدار داشته بالاخره یه نمک با هم خوردن با ایشون تنشون به تن چرچیل خورده بود یه سری چیزها یاد گرفته بودن اومدن دقیقا همین کارو رو رو کردن شما مثلا بید تاجیکستان 30 درصد جمعیتش ازبکه برید اوزبکستان 40 درصد جمعیتش تاجیکه برید قلقیزستان بیست اصد جمعیتش ازبکه اینجوری یه همچه حالت هایین به وجود یعنی این کشورهای جدید ملیت‌های جدید اونجا اینجوری به وجود اومد مثل با نام خلقها که اطمان همین خلق خودش خیلی مصیبت آفریده ازش پانهایی مختلف به وجود اومده که متاسفانه تو منطقه خاورمیانه میانه ما بسیاری از مسائلی که داریم مثلا همین چیزی که هم نتیجه همین خلق و هم نتیجه سیاست هایی که زمان حکومت عثمانی بوده بسیاری از این تنازعات قومی و مذهبی که توی کشورهای عراق و سوریه و لبنان و یمن و این نتیجهش همینه مثلا شما زمان حکومت عثمانی یه سری مذهب های تبدیل به قومیت شد، یه سری قومیت های تبدیل به مذهب شد. مثلا مذهب مارونی یک از مسیحیت، و الان تبدیل به قوم شده. دروزیگری یه مذهبه، الان تبدیل به قوم شده. تو افغانستان هم میام چه مشکلی هست؟ ما مثلا حالا اینا رو من حالت شاید حاشیه باشه، ولی میخوام به یه نتیجه برسیم و یک سوال اساسی ما اینجا مطرح بکنیم که به یه نتیجه درست برسیم. تو افغانستان هم حتی اینجوریه، مثلا حکومت طالبان به معنی حکومت سلفی اومد چیکار کرد اینها یه سری دیو‌بندی‌هایی بودن که پشتون بودن اینها هم حتی تبدیل به قوم مذهب شدن و, تم و هم تعصب قومی هم تعصب مذهبی با هم درآمیخت شد ازش که ماجون بسیار وحشتناکی به وجود اومد مثلا پشتونها طالبان طلبه‌های دیو‌بندیه اینا بر آن بودن که فقط پشتون‌ها حق خلافت داشتن نه همه ها فقط ها مثلا ها حق خلافت ندارن مثلا یکی از دلایلی که طالبان حکومت جدید افغانستان رو بعد از حمله آمریکا نپذیرفت این که حامد کرزی یه درانی پشتون بود گفت اگر حامد کرزی یک الجائی بود اساساً حکومت ما به رسمیت نمی‌شناختیم یعنی اینقدر تعصب قومی و تعصب مذهبی رو توی این منطقه استعمار چه استعمار غرب آمریکا و انگلیس و چه اندیشه نکبتواری که مارکسیسم استالینیسم حالا دوستان شب از بنده دلگیر نشن مارکسیسم در قالب استالینیسم به اتفاقا مارکسیسمی هم که واردیگی شد نسخه استالینیستی آن بود مارکسیسم استالینیست توی منطقه به این مصیبت مسیبتبار رو به وجود آورد و ما الان دوچار این مسیبت ها هست. مصیبت مسیبت خلقه ها مصیبت قوم ها مسیبت مذاهب فرق, فرق بگذاریم بگ قرار شد که هر سندی که اینجا مطرح میشه باید از تمامی فیلتر ها رد بشه. بسیار عالی. دوستان مطرح میکنن که دو نفر از دوستان که ایران وج توی فراروت هست. توی در واقع قسمت شمال شرقی فلات ایران هست. بسیار عالی. سند مهریشتم کابلا قبول. سند جنتیکی که جناب آقای فیروزی مطرح کردن که این مطالعات جنتیکی نشان داده که در واقع بسیار ساکنان فلاتی ایران نیاکانشون تو اون منطقه بودن البته اگر هر کدوم از دوستان من اشتباه میکنم در نقل قولشون حتما به من تذکر بدن لذا پس تو این منطقه یک سری تجمعات انسانی بوده ما خیلی خوشحالیم که این رو مطرح بکنیم که ما مثلا در مورد تمدن سومر الان در واقع بقایای ساخت و ساز داریم در مورد اون تمدن هایی که دور دریاچه های میانی فلات ایران هست ساخت و فراوان داریم که شهرها و روستاهای باستانی داریم آیا نباید ما انتظار داشته باشیم که اگر این ایران وج تو اون منطقه هستش تو اون منطقه شمال شرق فلات ایران هستش خراسان بزرگ هستش که قطعا مال فلات ایرانه اگر هم باشه هیچ ایرادی نداره مال مال خود ماست آیا ما حق نداریم منتظر داشته باشیم که تو این منطقه هم یک تپه باستانی، یک روستای باستانی، یک چیز شبیه در واقع مثلا شهر سوخته یا مثلا تپه مارلیک یا تپه کاشان اونجا مثلا داشته باشیم؟ آیا این امکان وجود نداره یا تا حالا کشف نشده این مسئله یا اینکه نه این اسناد نیاز به تفسیر و تعویل دارند. آیا اصلا قابل خطشه هستند یا نیستن؟ چون در برنامه گذشته جناب آقای کریمی بزرگوارد مسئله زبانشناسی این برنامه رو مطرح میکنند و ما از دانشیشون استفاده کردیم از این بعد هم استفاده خواهیم کرد و همه هم از هم استفاده کردن این مسئله رو فرمودن از جناب آقای ایران مهر ما شروع بکنیم که به این سند البته بنده به عنوان مجری شاید به نظر این صحبت بی طرفی بنده رو زیر سوال برد ولی خب به عنوان مجری حق دارم این سوال رو در بگم مطرح بکنم حالا جناب آقای ایران مهر تو برنامه گذشته خب برنامه گذشته که به پایان رسید خب فرمودن که به این سند و در مقابل این سند اسناد دیگی وجود داره که اینو نقض بکنه خب حالا اگر کارشناسان دیگر برنامه موافق باشن ما بریم سراغ جناب آقای ایران میر اسناد ایشون رو بشنویم و بحث رو ادامه بدیم و حتی المقدور از کاشناسان و محترم برنامه تقاضا می‌کنم که از مباحث چالشی خودداری بکنن فقط اسنادی که بهش معتقد هستن درست هست مطرح بکنن و بحث رو از حالت چالشی خارج بکنن جناب آقای ایران مهر در خدمت شما هستیم درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی این برنامه خدمتون ارز کنم که درباره اون مهریشت که خوندن من درباره سندی مانند مهریشت که از یشت ها هست شبهی ندارم نوع نگاهی که به اون سند میشه و تحلیل و تفسیری که رو اون سند میشم که مختص دوستانه حال نظر اوناست من نظر رو میگم چیزی که من نمیتونم حتی بگم شبه دارم بلکه مطمئن نم و اصلاً یک ذره شک در بارش ندارم اینی که اون سرزمین رامش بخشی که در اسناد اومده بنده رامش بخشی در طول تاریخ در آسیه میانه و فرارود خب ببینیم وقتی میگه رامش بخش طوری آفریدمش که سرزمین های دیگر هم یک مقدار بهشون داده های دادم که اگر نمیدادم این ایران ایرانویج اینقدر رامش بخش بود که اونای دیگه سرزمیناشون رو ویل می همه جمعی شدن تو ایرانویج یعنی دیگه خیلی داره تعریف میکنه ازش دیگه بنده در طول تاریخ تا امروز هم که هر چی نگاه میکنم رامش بخشی تو سرزمین نمی بینم یه سرزمین متوسطی از نظر پشتیبانی زندگی بشری و با همون سب که خودش داره میره جلو ما حتی تغییر اقلیمی شدیدی اما طول, طول تاریخ اونجا نمیبینیم که رخ داده باشه مثلا خیلی قبلا خوب بوده حالا روداش خوش شدن و اینا خیلی بد شده نه همون رواول تقریبا دارو یه منطقه با مختصات خودش البته کشور تاجیکستان همین الان هم کشور پر آبی هست خب تنها آب نیست که آید رامش بخش یعنی دیگه همه چیز, همه چیز تموم, تموم دیگه بله یعنی شما باید ببینید شما وقتی میگید اینجا رامش بخشه باید نمودش ببینید دیگه یعنی <متحد> باید شما یه چیزی مثل تپه حسن رود از کم اونجا ببینین یه چیزی مثل سیلک چه میدونم مثل تپه گیان مثل تپه شهداد تپه یه چیزی باید اونجا خب ببینیم بگیم بله اینجا اینقدر خوب بوده که مردم جمع شدن شهری بوده این هم تپش که باستانی مونده چیز باید باشه جای بورامش بخشی بلاخره مردم وقتی که تو هزارهای گذشته ده هزارهای گذشته میگشتن جای خوب پیدا میکردن دیگه دیدیم که تو تاریخ میبینیم پیدا کردن و دورش جمع شدن وقتی مردم کشیده شدن طرف میان رودان اون خوشسالیه درون فلات بود رفتن اینجا که آب باشه پیدا کنن و پیدا کردن اونجا موندن آثارش هم داریم میبینیم ما تو طول تاریخ و اینم آدم اگه جمع شدن اونجا من یه بار نسنس پیش گفتم بالاخره سیخی میخی چوبی چکلی، دیواری خشتی یه چیزی بالاخره هم گذاشتن دیگه خب نبات باشه ما امروز ببین در این مورد خاص خدمتون عرض کنم که تکه دارم روی اینکه مکان ایرانویج رو حتما با... ببینیم ما انتظار نداریم که حتما توافق کنی رو مکان ایرانویج بریم جلو تا تای برنامه نه دوستان از منظر خودشون داستان رو روایت خواهند کرد بنده از منظر خودم مثلا زمانی که برسیم به زمان دا همای و مثلا اینا بهمن فکر نکنم دیگه اصلا این چیزا مهم باشه چون نظر دوستان اینا کوچ کردن اومدن داخل فلات ما هم که اصلاً میگیم هم همینجا بودن یعنی موضوعات یکی میشه اختلاف همین اولاست دیگه من طرح خودم اون سندهایی که دارم ارائه میدم سر جای ایران باشه ببینید من با قاطعیت میتونم بگم ایرانوش در آسیه میانه نبوده شاید نتونم 100 درصد اثبات کنم ایرانوش کجا بوده اما میتونم اثبات کنم از نظر عقلی به سنوانده ها که نمیتونه آسیه میانه باشه حالا بعضی موضوع رو ما زمانیابی میکنیم بعضی ها رو مکانیابی میکنیم اما در این مورد خاص در باری دوری جمشید و ایران ما تا یابی نکنیم نمیتونیم به زمانش دست پیدا کنیم چرا؟ چون یکی از معلفه هایی که داریم و تو این مکان وجود داشته دایتی دا دایتی یه خاصیتی داره که مختصاتش بعدن زمان وقوع این رخدات ها رو به ما میده حالا چطور اون محلفه چارمیه که من میخوام بس کنم هنون سر مالفی اولی بنابراین تا این مکان رو من خوب جاشن نندازم مثلا نمیتونم این بحث رو رها کنم و برم سراغ مبحث دیگه ده. همونطوری که شما گفتین میریشت رو خوندن من عرض کردم مثلا درباره باره یشت ها من هیچ شوپه ای ندارم ا اما ما قرارمون این بود که با انباشت داده ها دیگه یعنی من نمیتونم یک سند بخونم برای شما اینجا و بگم آقا این دیگه تموم کرد همه چیزو بخیر کی گفته ما گفتیم استرام که تو اسناد ثبت شدن یکی از داده هامونه. داده های دیگه اونارو باید تکمیل کنم ما مثلا وقتی سند هواشناسی شناسی خونیم آیه فیروزی معترض شدن اون یکی دونشاسته پیش که این یافته های جدیدو نمیشه وصلش کرد به اون زمانا و دقیقا پشت سرش خودشون یه سنده جنتیکی خونده. یه سنده جنتیکی خودشون رو میشه رب داد اما سنده هوای ما نه. نه میشه دانش همینه دیگه دانش داره اون مطالب ما رو یکی یکی ازش استفاده میکنیم و اثبات میکنه اون سنده جنتیکی هم بس خواهیم کرد درست میگن آی فیروزی من با سند حساب که توی مجارتی رایتس کار شده از آی فورتسا اونو بعدم میخونیم. من اونو اشتباه گرفته بودم این سند این پجوش مال خانم کارافت و بسیار معتبرم هست بله. منتهی اینو من تو مؤلفه دوم که یخبندانه اینو بحث میکنم تا ببینه اون سند جنید که درسته اما به درد این مبحث که دوستان مطرح میکنن نمیخوره درسته یعنی آری فیروزی میگن 9000 سال پیش جمشیدو داره دستش اومد پایین اما سند مال 34000 و 18500 سال پیش دقیقاً یعنی سند 34000 ساله و 18500 ساله دارن میخونن اما وقایع رو دارن در 9720 تاریخ میگن. در این حال اون سند به درد ایشون نمیخوره. سند در به درد ما میخوره. اما کم این سند خاص بلد. به درد ایشون نمیخوره. چون تو پژوهشای ایشون جمشید یه چیزی نزدیک 8700 9700 به علام اولوش. حالا من به ریزش کنم همون هولوشه دیگه. پس هر ادعایی که می کنیم، هر سندی که می خونیم،, خونیم، با از هر منظری بهش نگاه کنیم. شما ببینید مری داره یک واقعی رو مثلا ذکر میکنه از ایران وژ. ایران وژ مال زمان جمشیده. خب منم خواهم به شما اینو بپرسم مهریاش در زمان جمشید نوشته شده مهریاش رو آخه دکتر زمان جمشید نوشتن نه دیگه ظاهرا ز... 4 تا ادبیاتش هزار... خطش تشکیلاتش زبانش همش متعلق به هزارای نزدیک به ماست مال 3 4 5000 سال پیش فوقش من... پس این داستان های کهن در زمان های تر به ما روایت شدن ما نمیتونیم مهیشت رو بخونیم بگیم یه نفر همونجا دوش به دوش جمشید داشته راه میرفته اینا را منوشته دیگه الا و ولا غیر و دیگه اجاز اینم نمیشه باشه نه آقا چند هزار سال بعد این سینه به سینه نقص شده پیدایش خط بعد اینا این داستان ها و باورها و روایات و هرچی که از استورها داشتن اینا رو مکتوب کردن این مکتوبش مال هم یه زارای نزدیک به ماست بنابراین این خیلی داستان ها میتونه بالا پایین شده باشه و اصلا برای همین این شکلی شده دیگه که ما بتونیم واقعیت رو از تو دلش بکشیم بیرون ببینین همین امروز هم شما شهر دوشنبه وقتی برین یه شهریه به. اما اگه به شما بگن دوشنبه رامش بخشتر یا شیراز شما مطمئنا میگین شیراز بگن دوشنبه رامش بخشتر یا اربیل میگین اربیل می‌دونید همین امروز هم اونجا رامش بخش نیست حالا باید خونه دیگه چیزا با هم حالا ما خیلی چیزای دیگه در ای باره مطرح می کنیم خدمتون بگم که اینی که این وقایه آسیای ای رو کی انداخت توی سر مردم این سرزمین حالا من توی یک جایی اشاره میکنم. او. کل این منطقه ها یعنی مثلا حتی عثمانی ها یه جوری گرفتار این مسئله بودن که اونا رو احاله دادن به آسیای میانه, میانه. ببینید ما یک بارم تفکر کنم تو برابری بود مرز کردم ما دانشامون رو به دو بخش کلی بخش میکنیم علوم نقلی و علوم عقلی, عقلی. علوم نقلی همین اسنادن و بالاخره چیزایی که هایی که میشه و بتونیم اینا آره رو با هم دیگه همخون کنیم و. اما علوم عقلی هم داریم یه چیزی باید با عقل هم جور در بیاد ولو سندش موجود نباشه این نظر عقلی با آدم بتونه اثبات کنه همون منطقه تاریخ بردار بله، درزم وقتی که اسناد رو بررسی میکنیم ما نمیتونیم به اسناد نمره بدیم یعنی این که بیاییم بگیم فلان سند چون با ذهنیت ما درباره کوچ جور در میاد سند خوبیه اما اون سنده چون شاعبه کوچ رو به ذهن متبادل نمی کنه نه دیگه اون به درد نمیخور و نویسندهش اشتباه کرد و او اصلا بیخودی نوشته ببینید بندهش یکی از اسناد دیگه که اصلا هر از هر جا گیر میکنه به بندهش مراجعه میکنه حالا وندیدات فرگرده بعدی شاید خیلی جالب نباشه اما بندهش واقعا سندی که نمیشه از کنارش گذشت یعنی به این آسونی نمیتونیم بگیم بندهش بیخودیه بندهش الکیه بندهش هرچون شاخه کوچ یه مقدار از ذهن دور میکنه نه دیگه بندهش نویسندهش اصلا اشتباه نوشته به درد نمیخوره این تون نگاه کردن به اسناد خب کاری نداره منم هر سندی که شاوی کوچو به ذهن متوادر کنه میگم نویسندش اشتباه نوشته، حالش بد بوده، شکمش خراب بوده، مغزش نمی درد میکرد و روزی که نمیشه آه. که ما باید با چیزای دیگه مطلبمون رو ثابت کنیم یا ارائه بدیم. بنابراین با برداشت‌های گزینشی و تفسیرهای خاص از اسناد ما نمیتونیم این فرضیه حالا به طور مشخص بگم فرضیه کوچ رو میدونین چیه؟ ما این فرضیه کوچ بود دیگه من. و ما اولی هم که برنامه رو آغاز کردیم داشتیم اونو نقدش می کردیم. کتاب هم نوشته شده دوستان ما فقط دارن یک کار میکنن دارن میگردن یک اسنادی پیدا کنن که یک رنگ و بوی ایرانی به این کوچه بدن همین میگن گرشمن گفته کوچ بی خود گفته من الان میام یه سندی پیدا میکنم طوری تفسیرش میکنم که کوچ رو از منظر ایرانی بتونم روایت کنم بلوست. اتفاقی که داره میفته اینه یعنی ما این همه تو سر کلمو زدیم ای کوچ نبوده مردم ایران مال همینجا بودن از جای دیگه نیومدن اون کلا رفت کنار دیگه فقط ما انگار بتونیم یه ای رنگ ایرانی به این کوچ بزنیم انگار جالب میشه دیگه همه چی حل انگار حالا اگه وقت من تمام شده بلد. که باز من داخل ولی باز هم هنوز دلایل شروع نکردین اینکه اصلا دایتی کجاست و به اضافه‌ی اینکه مکان ایرانی که شما حالا میگه 100 درصد نمیشه گفت ولی پژوهشاتم با طریقات اونجا، میشه امیدواریم که در نشست‌های بعدی اونجا، راست میگم آقای دکتر، موضوع جمشید یه طرف، بل. تمام اون نوار تاریخی هم یه طرف. ما ممکنه برسیم مثلا به بوشنگ که دوره خیلی مهمیه جمع و جورش کنیم، چند تا سند بگیم و توافق برسیم موضوعات روشن. دوره جمشید حالا بعد خواهید دیگه. من کم کم سندهای دایتی رو که تو بخش چهارم مؤلفهام، هنوز بخش اولسم که هم. من خیلی حرف آقا من اینجوری بگم اگه بخوایم جمعشید و جمعش کنیم شما تا 20 نشسته دیگه به جناب آقای فیروزی عزیز در مورد مسئله آسیای میانه خب ما تا همین هزار سال پیش هم داریم این مسئله رو بسیاری از این حکومت هایی که در ایران حاکم شدند خب گفته میشه از رود جیهون به این ورط شده و به قول آقای علی قلی در کتاب جامعشناسی شناسی خودکامی تحلیل جامعه شناختی ماردوش میگه که هر برده و اسیری که از رود جیهون به سمت پایین اومده تو این فلاس حوس حکومت پیدا کرده نمیدیم شاید هم این مسئله برای هزاره های قبل هم صدق میکنه شاید باز هم شما به عنوان یک باستانشناس که درستون تحصیلتون در مورد باستانشناسی بوده اون سوالی که من قبل از فرمایشات جناب اقای ایران مهر مطرح کردم آیا ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم تو این منطقه یه چیزی شبیه گوبکلی تپه تپه گوی تپه, تپه حسنلو داشته باشیم مثلا این خیلی انتظار زیادیه به نظرتون با درود آرازم خدمتتون که اولا باید این قضیه و این پیشفرض رو در نظر بگیریم که نبوده یک سند به معنی قاطع نبوده یک موضوع نیست ممکن از کمکاری باستان شناسی بوده باشه دلی. ممکنه این فرض وجود داشته باشه که چیزی بوده و از می رفت که میتونه انقدر قاطعانه بگیم هیچ چیزی وجود ندارد اون لحظه ای که ما به همون طریقی که اثبات میکنیم با همون درجه اعتباری سندی داریم که چیزی رو اثبات میکنیم به همون اندازه سند در اختیار داشته باشیم که چیزی رو رد کنیم در علوم فیزیک و علوم زیستی هم به همین صورت هست یعنی شما مثلا با یک سلسله آزمایشی ابود یا پدریه یا یک فردی رو اثبات می‌کنید یک فرزندی درست عکسش هم اینطور عین همون باید بشه اون نمیتون بگیم چون من حالا حال نداشتم لازم اش انجام بدم پس این نمیتونه اصلا پدرش اون باشه نه بود این همون چیزیه قضیه یعنی ما بعد عیناً باستان شناسی انجام میدید و باستان شناسی فرارود که روس ها انجام دادن باستان شناسی خیلی ناقصی بوده اینا خیلی خوشحال شده بودن که اومده بودن یه چهار دیواری چه میدونم مثلا 5 متر در 6 متر چیز کرده بودن یه بنای بالاخره اشکانی اینا پیدا کردن مثلا بعد از 200 سال سیطره بر اون منطقه خیلی خوشحال بودن هیچ کاری نکردن تو فرارودین روس‌ها هیچ کاری نکردن اگر اون باستان شناسی نیمه کامل ایرانی تو فرارود بود بیشتر از اینا پیدا می‌کرد این مسئله اول مسئله دوم این هستش که ببینید فرگرد اول و دوموندی که بارها در این برنامه خونده شده جملات ها خیلی ساده است یعنی مفهومش خیلی ساده است بله در فرگرد دوم جمشید در یک داستان و در کنار رود دایتای نیک در ایران ویچ به همپورسگی با در واقع مردم میاد و اخورة مزد. در واقع مردمان گیرامایی ن مردم و اخورة مزد این, این نشون میده که جمشید در گستره حکومتش داشت. کرده کرد که من این آدمی پادشاهم نمیتونم امتحانش کنم. این نشون میده که این جمشید شاه در گوستری فاموراواش بر سر زمین ایران هم حکومت داشته احتمالا به خاطر این جمع شدن و این هم بر اونجا مقر اصلی حاکمیشون در اون نواحی باشه این ولی به معنی این نیستش که اینا فقط اونجا باشن یعنی ایشون حوزه حکمرنش اونجاست اونجا جمع میشه کاراشو میکنه این یک ضمنی ای که ما اسناد دیگه هم داریم که در اسناد متأخرتر یا مقدمتن نسبت به وندیداد ما یه سرزمین دیگه هم زیر حوزه این آقا میبینیم. در خود یشت ها ببینید تو بند 15 هم از رام یشت و بند 25 هم از آبان یشت از کوه حکر نام برده میشه اگه اشتباه گفتم تلفزشون آقای نه. کریمی بگن و در بند 24 از ارتا کوه البورز در شماره سرزمین های زیر نفوذ وی آمده است این آقا از این طرف هم بر فلات مرکز ایران ها که میاد داشته. یعنی یک دستش بر ایران ویش هست که طبق وندیداد این سرزمین در شمال سوق بوده فرارود خواهد شد یه قد به شمال نمتون بشه یک دستش هم بر کوی البورس هست و بعد از اون یه نکته خیلی جالب وجود داره در یک سری از اسناد میگن این آقا در آخرین تسلط های حکومتش بر فارس مناطق جنوبی فلات هم گسترش پیدا میکنه حکومتش این ما رو یال شیم نوزه رفتن به سمت جنوب این در شمال فلات این آقا بلرز افتاده من قرار تحت تحصیل سرمایه قرار گرفته و این سرما الزاما اون سرمایی که بوز ما میدونیم یخبنداننا از چند دوم هست و این حرفا الزامن نیست سرزمینش در اون بالا دور سرما شده اینا تا کوه البرز هم بودن اونجا دچار سرما شده اینا جمع شدن تصمیم گرفتن فرار به سمت جنوب و ما میدونیم که طبق موتور متأخرتا به فارس هم رسیدن این یکی قبل از اون این. یعنی منطقه فارس استان فارس شون رو به فراتی آب و هوا کرد حالا آیا در این بره مناطق فارس امروزی ما میتونست گرم باشه این دیگه آب و هوا که و من خدمت رو میگم بله میتونسته چرا؟ چون فلات ایران بعد از بذارید من دقیقا براتون آب و هوای فلات هم حالا بگم به چه علت فلات نمیتونست زیاد آدم نگهداره در زمانی که اینا تو شمال شرقی فلات ایران فرارود بودن چرا نمی‌تونه اشتباه باشه علتش این هست ببینید آب و هوای فلات تا هزار سال پیش تحت تاثیر یخ هایی که رخ میدادن سرد بوده بله خب بعد از 16 تا هزار سال پیش اندکی پرباران و نمناک شد و درختان بلوط پوشش قابل داشت هزار سال تا 10000 سال خشک تر از امروز شد سال. سال ده هزار سال, سال. خوش تر از امروز شد خود فاطی را حالا متونشی میگن میگن که اینا فرار کردن اومدن به شرق... شمال شرق فاطی را شمال للفانسه امروزی شرق فاطی رو اونجا اوندن بعد از این هست که دوباره فاط ایران آب و هوایی خیلی خوبی پیدا میکنه اون سرماکی گسترش پیدا میکنه میاد پایین میاد پایین اینجااب هوا آب خوب دا میشه بدار گرم داره میشه برکسه بعد اینهاا میتونم واده فلات بشن کاملا طبیعیه که این جمشید حالا این اجدال ایرانیان که وارد فلات شده حالا با حکومت تشکیل بدن یخ بیرون تموم شده یه راستشون رفته تو از آکیبلش رفته تو فرا بود شما تا... کاملا تا... متین یعنی تو ده هزار سال پیش میگه که آب و هوا کمی بهتر میشه سلازیش میشن به سمت فلات اینا ده هزار 10000 سال پیش آب و هوای درون فلات خشک از امروز آره. بعد این سلازیشون به سمت چند هزار سال پیش میشه از سال بعد تا 9000 سال به بعد بعد اولین حکومتشان 9000 سال پیش تشکیل میدن تو 9000 ب... سال پیش دید. از هشتو زرتوش که بیایم به عقب 6800 پیش از میلاد میشه 8800 900 این حدود حدود ای 9000 سال یعنی طبیعیه زمان 2000 سال فرصت داشتن به یک جانشینی برسن و حاکمیتی داشکی بدن در همین فاصله اش رو, رو میگی در میان رودان شما رو همین فاصله 2000 ساله رو, سال رو میبینید از پیش از تاریخشون به یک جورش تشکیل دولت شهرها این تماش طبیعی است حالا یه جا مثل میارودان 5000 سالشه مثلا 5000 سالشه یه جا مثل مثلا چین 4000 سالش باستگی منطق است بس یه هوش استدلال آدماست جز تعجب نکن حالا اینا بیش این 8800 سال پیش این کارو کردن عرض کردم در تپه در ترکیه انجلی امروزی با... که این ریشت به ترکان نداره یه ترک زبان ها یه محوته است به اسم گوبکلی تپه این دوازده هزار سالش باستان شناسی و چنان شما نقش برجسته ها و معماری سنگی در اونجا میبینید که نگاه تخجیرم شدید میبینید این 12000 سالش حالا ما در 8800 سال صحبت میکنیم چیز عجیبی نیست اون زمانی که در مصر اهرام مصر 4500 سال پیش می ساختن در 100 کیلومتر غرب ترش لیبیایا شاید یه خونه چوبی هم نداشتن یه خونه چنی هم شاید نداشتن دلیل نمیشه می خوام حالا بس ببینید صبر متون با صحبت کنیم که حالا من میتونم بیام علم امروز رو بدم میتونم تطبیق بدم با این یا تاییدش نمیکنه میگه امروز تاییدش نکنه این متن ما رو هواست اینو میگم بعد حالا میتونیم تضمین بدیم یک موضوعیه با علم امروز به چیز ولی نمیدون تفسیر کنیم بریم که حالا سرمایه‌ای که به دوران جمشید اومده چه امروز ما فهمیدیم خیلی بزرگی قدیم باشه همون سرماست پس منم میتونم بیا فردا بگم که اون هیولاییه که مثلا در فلانجا با گیاه می میجاست این دایناسور فلان هست در فلانجا یاد نمی‌شناخم. نه این رو من نمیتونم با دانش امروزام بیام یک چیز تحمیل کنم. من باید تأمین بدم. بله. خب. جناب آقای فیروزی، متشکریم از توضیحاتتون. اقایی کنیمی در مباحث زبانشناسی شما مسئله مهریشت رو مطرح کردید؟ سندی که از مهریشت بوده؟ ضمن ادامه مباحثتون شبهاتی که هم توسط بنده مطرح حتی شبهات به خود سند نیست در واقع این که این سند به تنهایی نمیتونه به تنهایی نمیتونه دقیقا اون فرضیه قرار گرفتن ایران وجه در شمال شرق فلات ایران رو تحت پوشش قرار بده شما بر اساس دانش زبانشناسی که دارید به این مسئله پاسخ بدید بسیار ممنون به نام خدا و درود فروان خدمت یعنی گرامی در سر تا سر جهان هفته پیش باص اسطور شناسی بود الان اگر به ما میگفتن که قراره باستان شناسی کار ما سالا باستان رو می آوردیم من خب تو ساحت دارم مثل باستانش. اتهان خدا رو شو الان دست دور دست من هست ای کاش ای کاش ای کاش, ای کاش این تصویری بود درست کتاب من از آقای شادروان جهان شادخش این خیلی تعریف کردم ولی خب ارااده بنیادیشم گرفتم درست خود ایشون اومده مثلا به کوه شمال شرق و سند خودش ارائه داده یک سندی هستش ما 4500 سال پیش در برخ درست. یک بانوی با یک لباس یک همین الان در فرانسه نمیتونی اونو بدوزونی درست ما... 500 سال پیش بله زمانیتن. درست شما به لباس جنوب غربی ایران رو در 500 پیش از میلاد ببینید ما کتاب دیاکنوف رو ببینید ما سند مهرگشتو میای میگی آقا به هزار امروز نزدیکه ماش حداقل 3000 سال پیش نوشته شده اینکه که کی سروده شده اینو برای هزارم سوم پیش از میلاد ما میدونیم درست دوستان میتونن برن تو پیش پیشگفتار کتاب دکتر چنگز مولایی. میتونن برن ببینن حتی زبون اون از زبان ها گات ها کهن تر بوده. بعدن اینو اومدن به زبان امروزی تقلیل اش دادن. ولی بله، ته سابقه اون میرسه به 3 تا هزار پیش از بله، میلاد. شما 3 تا هزار پیش از میلاد رو واسه شبهه ایجاد میکنید بعد بندهش که ما با قرن سوم هجریه ما فنبق داداگیه. البته ایشنون... البته ارجام میده به سنت های کهن. بله میده ولی توش بر از اراده ارجام میده به صندت تازه صندت کوهندش چیه؟ خود مهریشت براش یه فوق کوهنده خب شما هم این صندتو مطرح بکنید. در واقع تقویتی بشه بر فرضی خودتون. هیچ ایرادی هم نداره. دستان میتوند کتاب داستان ایران بر بنیان گفتدارهای ایرانی نوشته به فریدون جنیدی در هفتم قسمت گسترش خانمان روی 257، 258، 259، 260، 261 و 262 خلاصی استدلال ایشون چی هستش؟ ایشون کاملا دارم میگن که آقا دفعه به خاطر گسترش جمعیت اینا رو براکنده شده. قشن از اینجا کجا رو به کجا؟ از همون شمال شرق از کجا؟ از شمال شرق به داخل ایران؟ بله از فلات ایران ما من شاید این کلمه درست نباشه بگم ولی ما یک قولی هست به نام زمان شنسی. من فقط روی یک فاکتور نیست که که گفتیم شمال شرقه یعنی من خودم قبول دارم ایران مرفت گفتن که پوینت این سمت فرهنگی برای ساکاوش مشخص بوده این کاملا تایید شده است درست جناب بالو مساکا جناب هارولد والتر بیدی بزرگترین زبانشناس جهان مرد اعتماد و احترام بزرگترین شانس جهان حتی ایشون تو کتاب خودش مینویسه که حتی دانشجوی زبان انگلیسی هم بخواد زبان مادرش رو خوب یاد بگیره باید کتابای فارسی واسون یاد بگیره تا این حد انسان بیریا و منصفی هستش این کاشکی میشد اینا رو نشون داد بنامه این چیزی که شما میگید کشف, می کشف نشده دوستان فرمودن که چقدر اونجا از لحاظ باستانشناسی ضعیف کار شده خوب. در همینقدر ضعیف کار شدن این کتاب شما میبینید که 511 صفحه خوب. ما دیکشنری داره بله. دیکشنریشه دکشنری واجنامهشه مش نامی زبان سکاها. یعنی از این قوم بی‌تمدن انقدر هنوز سند در دست است با اون همه کشت بسیارشون کالبد بسشون سندار میارن تاریخ جوینی من هنوز نبردم درسته این واژه ها و این اصطلاحات مال کدوم دوری تاریخی به سکاها هست خدمت میکنم هم... از, میکن. میکن. از سده دوم پیش از میلاد شروع میشه اینش... این سندها ما مویند ثابت شده هنوز تازه ما سردای تخاری به دست عمر نرسیده فقط یه سری کوچیک به دست عمر رسیده خارازمی هنوز به دست عمر نرسیده دست. ولی همین این فقط کمترین بی‌تمدن‌ترین قومش آسیای شمال شرقی من به شما قول میدم آقا شما به از همون جور غربی که دارید میگید آقا اندازه یه برگه آچار نمیخواد هفت صفحه از بهترین قومشون وردید بیارید بل. در شمال شرق شما حتی یک ایزد غیراریایی نمیبینید بل. حتی یک نام غیرآریایی نمی‌بینید این همش درست اینا همش ولی بله شما در اینو این ما بی یعنی ایلام رو صفحه روزگار نبوده من, کنم. من چی آر... هم به اون کار من زمان آریام آریایا گوسترا زبانیشون از اونجاست اصلا حالا من شما با تفسیر خودتون خوزستان و جز سرزمین آریایی نمیدونید به تفسیر شماست اصلا این من چیز دیگه دارم شما میگین جنوب غرب چیزی نبوده من میگم بوده ما نگفتیم چیزی نبوده گفتیم آقا کانون من به عنوان یکی کسی در زمین شاسی کار میکنم این درباره زبان ها 500 صفحه است 50000 صفحه درباره جنوب غربی ایران واژگان از سومری ایلامی بلد. پیشا ایلامی پسا ایلامی آریایی زبان هند و یعنی چی این تفسیر شما سوال تفسیر غلط شما رو واسه کشونده به شما معتقدید که کانو و مردم زبان با آریای غیر آریایی کردن دارم میرن جلو؟ از اولم همینطور بوده. خب رت مشکل به نظر من هر می‌نویسم دو دوستان اصلا زبان آریایی غیر آریایی از آخر نفهمیدم آیا دکتر؟ حالا میرسیم به اش. زبان مردم شوش و مردمان اروپایی که حالا بهشون میگن ایلامی و سومری از زبان دستور زبانی که آریایی نیست، اند یعنی اروپایی نیست، ولی این دیر بر این که نژادشون هم همینطور باشه. در بر شما ولی ما داریم میگیم زبان شناسی داره میگه کانون ببینید من کل کتاب معرفی کردم گفتم آقا اینو بخونید سه چهار سال طول میکشه این سه چهار سال تازه میشه آغاز کسی که اصلا ببینید چون بچه ما مثلا تاریخ میدونن چیه شاه میدونن چیه زیگورات میدونن چیه اییلام رو شنیدن همین نارشننم هیچی از زبان شناسی قوانیش نشیده. این واژگان صد دوی پیش از میلا چه ثابت میکنه؟ خیلی چیزا ثابت میکنه بابا شما, شما, شما برای من بیارید, چ... بیارید. سال دهم پیش از میلاد واسه من بیارید چی بیارم اخه خنده‌دار الان هر چی خندش میگیره اصلا اردشیر بابکان دوباره از ماد نام میبره ولی ما اندازه اردشیر بابکان ما کیه ما 1700 سال پیشه حتی آه. از هم مال 1700 سال پیشه ماد برای برام یه برگشت بیارید از دوم چهارم پیش از میلاد هیتی ها اخه خب قولی بودن شما اخه چطوری یاد هیتی ها در کنارشون زبان قراری فراوان بوده نام‌های قریاریی فراعونه، خدایان قریاریی فراعونه اساساً فرهنگی است. بله، فرهنگ فرهنگ. نشون میدی که ببینید کانون زبان داره نشون میده من... کجاست. اصلا ببینید شما کانون زبانهای کل این فلات ایران رو از شمال شرق می‌دونید. اصلا از بله، حتی ناتن فد ایران. وقتی برنامه‌ام پایان ببینید هم هیتی ها، هم برای گوتیک، هم برای سلتی‌ها منجا نشون میده، هم برای یونانی‌ها، هم برای هم برای کتون دقیقاً صحیح هم بیارید من پاسخشو میگم. دکتر درخشانی, درخشانی، تاریخ دان بودن از زبان شناس اختراعات بزرگی در کتاب نوشته. شما اعتقاد داریم که شما پژوهشگری اینا رو داریم میخونید دیگه. امی امی نمیشه من شما بیارد. یک دو وقت اصلاً اصلاً به من نرسید. مشکلی نداره. پس برنامه بعد از شما شروع میشه. مشکلی نداره. شرمندگان گرامی تا آغاز قسمت 25م شما رو به خداوند متعال سپردیم. خدا یاری